السلام علیک یا ابا عبدالله سلام بر او که چراغ هدایت است و کشتی نجات و سلام بر شما عاشقان کوی حسین علیه السلام تو همان قافله سالار غم یا اهل بیت همان قافله سالار غم یوسفی بر سر بازار غمی یالی تو همان غافل سارار غمی اخی یوسفی السلام علی یا علی ابن حسین زین الابدین سلام بر تو ای رساترین فریاد ای صحیفه کربلا ای یوسف هم ما به دچار چشمت دیده یا الی؟ یوسف هم ما به دچار چشمت دیده؟ هیچ ده یوسف سر بریده؟ آخه هیچ ده یوسف سربا بریده؟ سر بدارن همه، سر بدارن همه بر نیزه جدوم، سر بدارن همه بر نیزه جدوت، تکیه گاه سرشنوین گلود، چهری از کیه تماس او، سعی از ما مظلوم در سر او، یا علی ابن الحسن، یا علی ابن الحسن. سلام بر عاشقان وارث کربلا حضرت امام سجاد شهادت کننده ترین عاشق حق رو به شیفتگان ولایتش تسلیت میگم یا سیدی زین العابدین یا سیدی یا سیدی یا سیدی زین العابدین یا سیدی یعوب آل علی منا ایام در شهادت یعوب آل علی منا ایام بره شهادتت خونگری کردن در همه جا ذکر بلا شدادت خونگری کرده در همه جا ذکر بلا شدادت هم همراهمون باشید بخش مختلفی در برنامه داریم که تقدیمتون خواهیم کرد به صورت حضوری هم در خدمت حضرت جلسه‌سنام اول مسلمین دکتر محمد رضا هستیم و درباره برای وقایه امروز و شهادت امام سجار دلائی برای شما بیشتر صحبت خواهیم کرد. همراهی بفرمایید موج رو در حالی که ساعت شانزده و شش درگ تر شد زکربلا شام بلا شام بلا کشنده تر شد زکربلا <تصفيق> زخم زبانها کشید مرا شام بلا دلم از قصه شد کبا دلم از قصه شد کباب اهل بیت و بزم شرا همه اعضایم لب بابایم شده هم رنگ غوا همه اعضایم لب بابایم شده هم رنگ. پیش چشم من پیش چشم من میزن هد دشمن به لبش چوب خیزم یا سیدی زینولا سلام می میکنم به حاجتون السلام و مسلمین دکتر محمد رضا جبالی که در این لحظات خدمتشون خواهیم بود و جبالی خیلی خوش آمدید سلام میکنم علیکم السلام و رحمت الله بسم الله الرحمن الرحیم محضر حضرت عالی و همکاران گرامیتون و شمندگانه بزرگوار این برنامه عرض سلام و عدب و احترام و عرض تسریت دارم شهادت عبابدلله علیه السلام و اصحاب یارانش و همینطور سال روز شهادت میراستار اون حضرت امام سجاد علیه السلام رو و امیدوارم که خداوند متعال انشالله ازاداره های همه شیعیان رو و شنوندگان عزیز رو انشالله مقبول درگاهش بفرمند. انشالله خیلی ممنونم از حضرتون انشالله در دقایق آینده بیشتر صحبت خواهیم کرد با اتون و بیشتر از بقایه امروز و شهادت امام سجاد علیه السلام برمون خواهیم گفت. خیلی ممنون و اتکرم. دیر چون این بود که بمانی اما نهانگونه که بیمارت میخانند ای همیشه بیدار ای آور فرهنگ بزرگ آشورا ای پناهگاه بینوایان شبهای مدینه ای صبور غمگین ای صور همیشه شهر ای فرزند مکه و منا ای در نای تو نای نینوا هنوز هم راهیان پرواز با هر بهار دوعاید از های بیمار تو وام میگیرند و با نام حضرت عشق تا خلوتگاه خورشید میراند. من به خال لبت دوست گرفتار شدم چشم بیمار تو را دیدم و بیمار شدم قم دلدار فکنده است به جانم شرری که به جان آمدم و شهره بازار شدم امام صبرم به غم و غصه خدا خدا امام صبرم به غم و غصه مبتلا همیشه اشقم از دزداد کربلا امام صبرم کبو کوس همیشه اشکم بولد از داغ به پیش چشمم دلم نزغم شکست آخ به روی نیزه سر بابای من نشست تا سر بابای من را تشنه بریده خوب، حجت و حجت الاسلام و المسلمین استاد جباری امروز که خدمت شما هستیم حالا هم به مناسبت شهادت امام سجاد در این سنام بخش بحثو در مورد امام سجاد علیه السلام خواهیم رفت بحثو در باره وقایع امروز و حالا روشنگری هایی که امام سجاد و حضرت زینب سلام الله علیها انجام دادن به سنگ بیشتر امام سجاد علیه السلام در روشنگری ها خدمتتون هستیم بسم الله الرحمن الرحیم وجود مقدس امام سجاد علیه السلام بازمانده اصلی حادثه کربلاست و در حقیقت رهبر رهبری اسرار رو در مسیر کوفه و شام و بازگشت به مدینه اون حضرت عهدهدار بود هرچند در کنار اون حضرت زینب کبری سلام الله علیها نقش بسیار مهمی داشت منتهی به حضرت زینب باز با عنوان کسی که تبعیت از امامش امام سجاد علیه السلام میکنه در این مسیر و بی اذن و بی امر اون حضرت کاری رو طبعا انجام نمیده بدون رضای اون حضرت ادوار حیات امام سجاد علیه السلام رو اگر یک مرور کلی بخوایم داشته باشیم میتوان به سه بخش تقسیم کرد بله بخش قبل از آشورا و بخش مربوط به حادثه آشورا و پیامد اون و هم مربوطه به بعد از حادثه آشورا یا دوران امامت اون حضرت که حدود 34 سال طول کشید ولادت اون حضرت بنابر مشهور در سال 38 هجری انجام گرفته بنابر این حدود دو سال از دوره حیات جدشان امیر المؤمنین علیه السلام رو اون حضرت در کردن و بعد حدود ده سال دوره امامت هموی بزرگوارشون امام حسن علیه السلام رو و ده سال هم دوره امامت پدر بزرگوارشون امام حسن علیه السلام رو درک کردن و طبیعتاً هنگام حادثه آشورا اون حضرت بیست و حدوداً سه ساله بودن و خب با توجه به این نکته یعنی هم سن حضرت و هم با توجه به شواهد تاریخی از جمله اینکه اون حضرت صاحب فرزندی بزرگوار بودند یعنی امام باقر علیه السلام بنابراین در حادثه کربلا یک به جوان رشید و بالغ بودند و سخن برخی از مورخان مغرز و برخی از روایاتی که به قصد و به هدف تقلیل و تقلیل شن و تحقیر امام سجاد علیه السلام و اهل بیت علیه السلام جعل شده در باره که در مجلس ابن زیاد ابن زیاد گفت که ببینید این غلام مثلا این جوان آیا بالغ شده است یا خیر و روایات موهنی که در پی مسئله نقل کردن که عرضه میکنم این ها همه ساخته و پرداختهیه دستگاه اموی و بغضت و حال تقلید شان و احانت به ساحت مقدس امام سجاد و الا بلاواز تاریخی تردیدی نیست که اون حضرت حدود 23 سال داشتن فرزند 4 ساله ای داشتن امام باقر علیه السلام سال 57 متولد شدن و در حادثه کربلا حضور داشتن امام باقر علیه السلام بر روایاتی از اون حضرت رسیده که اون حضرت اقرار کرده اعتراف کرده فرموده است که من به صلاح شهادت جدم حسین علیه السلام رو به یاد دارم حادثه کربلا رو به یاد دارم جدم رو به یاد میارم بله. و خب بنابراین این بخش دوره قبل از حادثه کربلا حدودا 22 الی 23 سال طول کشیده درباره این دوره اطلاعات زیادی از امام سجد علیه السلام در دست ندارم چون برای دوره قبل از امامت اون حضرت بود و در سایه اموی بزرگوارشون امام حسن و پدر بزرگوارشون امام حسن علیه السلام نیز دیستن. اون تا اون نکته ای که هست بحث عبادت اون حضرت که طبیعتاً از همون جوانی شروع شده تحت تعلیم امو و پدر بزرگوارشون هستند و بعد هم در عبادت زبان زد شد امام سجد علیه السلام در دوره بعد از آشورا که دوره امامت اون حضرت هست زین العابدین در حدی که زین العابدین لقب گرفت اون چنان در بحث عبادت کوشا و سعی بود که حتی بعضی از زنان خاندان اهل بیت یا زنان بنی هاشم و متعلق به خاندان اون حضرت نگران می شدن بعضی از اهل اون خانم نگران می شدن که مبادا آسیبی به جان امام صادق علیه السلام برسه به خاطر کسرت عبادات یه روایتی هست که فاطمه بنت علی سلام علیه به جابر ابن عبدالله انصاری ابتداعن میگه ما اهل بید حق برگردن شما داریم و بعد جابر وقتی که رو سال میکنه میگه علی ابن الحسین خوف دارم که از شدت عبادت خودش رو به حلاکت بیاندازه تو برو و با اون سخن بگو که کمی تقلیل بده در عباداتش و وقتی که جابر میره با امام سجاد علیه السلام سخن میگه در این باره امام سجاد علیه السلام عبادات فراوان پدر بزرگ بارشون امام حسین و جدشون امیرالمومنین علیه السلام رو بر رخ جابر میکشه و بعد میفرماد که عبادت من کجا و عبادت اونها کجا و خیلی عجیبه که خب امام سجاد با وجود این عظمت در عبادت و اشتحالی که در عبادت پیدا کرده اما ناچیز می‌بینه عبادت خودش نسبت به عبادات پدر بزرگوارش وارش و چد بزرگوارش وارش و خب این, این ها برای امثال من طبیعتاً در ساموز بعد باشه مانده. که خب امی علیه السلام در وادی عبادت هم به بحث کیفیت توجه داشتن و هم کمیت درست و اینجا وقتی که نگران میشه به بن تعلی و به جابر عرض میکند از اون کیفی... کمیت عبادات امام سجد نگرانه جدای از بحث کیفیت ولی زامو باید توجه داشته روشیم اصل بر کیفیت هست عبادات باید با, همراه با روح, و روح و حضور و اینها باشد اما به کمیت عبادت هم نباید بی اعتنا باشیم بله. و بحث نوافل و بحث اصلاح مناجات ها، تعجود ها اینها به هر حال اگر می در مسیر حرکت بکنیم که اهل بيت السلام در اون مسیر حرکت میکردند كردند خب درباره ائمه عليهم سیره سيره اون بزرگواران رو وقتی که بررسی می كنيم معمولا این نکته رو میابیم در حالات ائمه کثرت عبادت دارد. کسرت عبادت نکته است که به هر حال به توجه ها منتاها هر کس در حد توان خودش و به فراخور حال خودش باید بر حال توجه به این نکته داشته باشه حالتی نبایدم تحمیل بر روح باشه در زمانی که روح آماده هست و حال توجه به این نکته و اصل در حیات معصومین علیه مسلم باید باشه بعد از حادثه کربلا جدای از این اوصاف اخلاقی امام سجاد که خب فراوان و مجال گسترلی رو میتره که ما در جبه اخلاقی حضرت بحثش دو باشیم اما بلهاز حیات سیاسی اون حضرت منش و مشی رو انتخاب کردن که بتوانند حرکت پدر بزرگوارشون امام حسین علیه السلام به سامان برسه و نتیجه بگیرن از اون حرکت منده. اگر امروز بخوایم ببینیم که امام سجاد علیه السلام در اون حرکتش درست عمل کرد یا خیر با ملاک‌های ظاهری و طبیعی بخوایم بررسی بکنیم همون نقطه‌ای که امام سجاد علیه السلام فرمود به اون کسی که سوال کرد از حضرت که وقتی که حضرت به اصلاح این سوال داشت شد که در این حرکت کی پیروز شد در قیام پدرتون در این جنگی که انجام گرفت کی پیروز شد حضرت فرمود که منتظر باش ازان بگن ببین که صدای چه کسی شهادت به رسالت چه کسی بر معزن میاد اگر شهادت به رسالت پیامبر اگرم بر معزن آمد و خواهی فهمید که چه کسی پیروز شد. یعنی طبیعتا امام حسین علیه السلام حرکت رو انجام داد برای بقاع اسلام و امام سجاد علیه السلام بعد این حرکت رو استمرار می و به ای عمل می کرد که اسلام اصیل که در قالب اسلام شیعی است اسلامی که در قالب اسلام تابع مکتب احل بیت اون باقی بمانه ولی خب اسلام دگر باقی بود بود بس. اون اسلام رو خلافای اومب و عباسیم با اونها کار نداشتن اونی که اونها باش معارزه داشتن اسلام در قالبش تشیع بود و پیروی از مکتب اهل بیت علیهم السلام بود و امروزه اگر بخوایم همون نکته که امام سجاد علیه السلام فرمود امروزه اگر به هم ملاک بخوایم بررسی کنیم که اون حرکت امام عبدالله علیه السلام در آثار درازمدتش باقی مانده یا خیر یا چه آثار درازمدتی داشته باید ببینیم تشیع اسلام در قالب تشیع یا اسلام در نگاه کلی و و به خصوص اسلام در قالب تشیع و مکتب اهل بیت امروز باقی مانده یا خیر یک و دوم اینکه رو به اشتداد و فزونی و کثرت هست یا رو به تقلیل بوده تاریخ هر این طرفدار آمده تشیع به رو به گسترش بوده بلد. و این ناشی از به حال حقانیت این مکتب هست و اصالت این مکتب و منطقی بودن شعارهای این مکتب هست. امیدوارم که ما شیعیان قدر این مکتب رو بدانیم و با بعضی از رفتارهای سخیف و موهن و نامعقول که گاهی در قالب ازاداری ها بعضاً مطرح میشه اون اصالت تشیع و منطقی و معقول بودن حقیقت این مذهب رو خدای نکرده زیر سوال نبریم. و خب اون حرکت سیاسی حضرت به انجام گرفت که زمن تأیید برخی از قیام هایی که برای احقاق حق برای اعلای کلمه حق انجام می گرفت اون حضرت حمایت از اون قیام ها داشتن اما خودشون دیگه مصلحت نموت که مستقیما وارد قیام بشن چون بعد در حال اون بقیت الصیفه شیعه رو حضرت حفظ میکردن برای همین جهت اون قیام هایی که شعار باطل نداشت ماهیت درستی داشت مثل قیام مختار یا قیام طوابین قیام تبابین یا حرکتی بود که بر حال شعارش باطل نبود به قصد خونخواهی بود حالا در عمل چه عمل کرد اما اصل هدف این قیام قیام هدف درستی بود طبیعتا امام سجاد علیه السلام از این قیام حمایت کرده باشد یا طبیعتا از قیام مختار بعد حمایت کرده باشد یکی از من طبیعتا اگر هیچ نسی هم نباشه این رو میگیم چرا صد به اینکه در برخی از متون قرون میانه از کنم که در اون کتاب این کتاب اختلصار این تعبیر هست که در فاسخ اموش محمد ابن حنفیه در ارتباط به قیام مختار امام سجد جمله دارن که به دستمون ملاک میده در باره موضع گیری این نسبت به قیام ها که یا عم بلا ان عبدا زنجی تعصب لنا اهل البیل لوجب علا ناس معاذرت امو جان بلو یک قلام سیاه بنف ما اهل بیت حرکتی بکند کاری انجام بدهد بر مردم واجبه که او رو یاری کنند و همین نکته بر حال شیعیان در اون زمان چه و عکس کردن از فرمان امام سجاد در رکاب مختار جنگیدند جنگید. خیلی ممنونم آقای جوادی حالا ما توی بحث‌های بعدی باز هم صحبت خواهیم کرد از شهادت امام سجاد هم خواهید گفت و فرامون و دیگه باره بقای امروز 10 محرم هم بشیم خیلی ممنون آشنای رسالت هنوز هوای متراکم صحرا متاثر از صدای قل زنجیری است که دستان مبارک تو را در بر گرفته بودند آه که این قوم کر و کور که پس از شهادت حسین زمین و زمان از بحر توست که برپاست اما تاریخ که حجت خدا بر خاک خرابه بنشیند و نااهلان بر منبر آسایش مولای من چه بگویم از سفر تلخ و پرمشقت تو چه بگویم از سید ناسزا و به تو چه بگویم از نگاه های حرامی که به کاروان و حرم رسول خدا میانداختند و قلبت را میسوزاندند. چه بگویم که تو خود یک عمر با خاطرات کربابلا و این سید که نه از چارخ تین دیگر در کمان نداشته دانی موسیقی تنجر را کشید اومد بالا زر بیمار دختر بچا و زنا همه دارن سرا آروی کنه یه بیمار تو خیمه نیم سوخده گفت میخوام یه مرد تو اینا نباشه همشون رو به قتل برسونم حالا شه همینو همی رو مسلم گفته دانی به کربلا زچه او را تا کوفه زنده ماندن او را گمان نداشت گو بشم گفتم که داره داری نمیمونه رفته ام به خاطر من ستام کشیده. فسترا بیان ببینم ام به فای مرا شهادت امام سجد علیه السلام بفرمایید تا پردازین به بقایی بله کنم که امام سجد علیه السلام بعد از حادثه کربلا حدود سی و چهار سال عمر کردند تا سال نوود و پنج هجری بنابر مشهور و خوب با خلافای مختلف معاصر بودند یعنی بعد از یزید مل اون که تا شست و چهار هجری در قید حیات بود بعد به حراکت رسید بعد مروان مدت چند ماهی مدت کوتاهی خلافت رو به دست گرفت و زمام حکومت و عموی رو از شاخه صوفیانه منتقل کرد به شاخه مروان که تا آخر بنومیم هم شاخه احددار این منصب بودن بعده. و بعد از مروان حدود 20 سال یا بیست و یک سال فرزندش عبدالملک ابن مرمان حکومت داشت تا سال 86 و شش هجری و بعد ولید ابن عبدالملک و, و سلیمان ابن عبدالملک حال ماسیر ما باقر علیه السلامه و خب در دوره ولید ابن عبدالملک امام سرجاد علیه السلام مسموم شد درباره کیفیت مسموم شدن اون حضرت و کیفیت شهادت ازداد گزارش مسرحی در تاریخ نداریم بعد خیلی جزئیاتش ما باز نشده اجمالا شهادت اون حضرت مسموم شدن اون حضرت در متون آمده و از اون طرف با توجه به دو تا روایتی که به صورت کلی درباره معصومین علیهم السلام هست که با تعبیر ما مننا الا مسمومون او مقتول که از امام حسن مجتبی علیه السلام شده از امام صادق علیه السلام نقل شده از امام رضا علیه السلام شده در متون کهن ما می توان از اونها از عموم اون استفاده کرد و اینکه امام سجاد علیه السلام هم به شهادت رسیده توسط این خلیفه که مربانی و طبیعتاً این نکتر باید همیشه ما توجه داشته باشیم این نکتر حتماً باید توجه داشته باشیم ببینید امام سجاد علیه السلام که قیام نکرد حرکت آشکار سیاسی انجام نداد در حالی که در دوره اون حضرت قیام های مثل قیام عبدالرحمن ابن محمد ابن اش هست انجام گیره که حجاج باش مقابله کرد بانه. یا قیام طبابی این قیام مختار مثال این قیام ها صورت که خوارج حرکت انجام دادن اما امام همطور که از شد آشکار ها همراهی با این قیام ها نکرد چطور میشه که با این وجود امام سجاد و دیگر این ملحیم السلام که به ظاهر در تقیه هستند و در قیام نیستن خلاف ها متعرض اونها میشن و خب این در حال است که دیگرانی هم هستن که اونها هم خب دارن کارای به ظاهر فرهنگیشون انجام میدن و طبیعتاً چنانکه متعرض اونها نمیشن هایی که زمان ما سجاد دو مثل محمد ابن شهاب ابن مسلم زهری و امثال این قبله هایی بود در مدینه، جاید، عراق و کوفه و اینها بودن همونطور که متعرض اونها نمیشن بعد متعرض ما سجاد هم نمیشودن نمی چطور شد می میدان صلاقه اعمالهم سلام این نیست مگر آنکه اونها احساس خطر میکردن حتی از سکوت ائمه علیهم السلام چون این به ظاهر سکوت و تقییه بود اما در واقع اون کار اصلی ائمه داشتن انجام میدادن و اون رشد دادن تشیع و اون خط معارض اصیل به اصطلاح جریان منحرف عموی و عباسی ائمه داشتن این کارو میکردن و اونها هم می میفهمیدن که امام داره چنین کاری رو میکنه و باز برگردیم به همون مفهوم درست تقیه مانه. که تقیه اصل قرآنی، اصلیس معقول، اصلیس روایی که بر اساس تعریفی که درباره باره تقیه گفتن یا در روایات تعبیری که آمده که اتقییت و حرز المؤمن، اتقییت و جنت المؤمن تقیه سپره و این السلام سپر رو زمان سپر به کار میره یا تعبیر به کار میره که در موقع مبارزه باشن بلکه کسی که مبارزه نمی‌کنه در خانونی شاسی نیازی به سپر داره درست است سپر منظو تقیه سپر بود یعنی برای دفع خطر موقت دشمن تا موزه رو عوض بکنم ضربه رو بر دشمن بزنم و زدن ضربه بر دشمن حفظ تشیع بود و رشد دادن تشیع این جریان اصیلی که امثال معاویه و یزید و دیگران دنبال بودن که اون رو محوش بکنن و دفنش بکنن بهترین کاری که علی سلام و به خصوص امام سجاد علیه السلام انجام دادن این که این خط رو حفظ کردن و بعد از حادثه عاشورا واقعا تشیع در ضعف قرار گرفته بود بله خب یه ایده بودن که بچا احساسات شدن در عراق مثل طوابین اینها خب جایی که بیان از کنم که کنار امام سجاد علیه السلام و کسب تکلیف بکنن خب حرکتی انجام دادن نیتشون هم حالا خیر بود اما خود این نشون میده مظلومیت تشیع رو و محدود بودن رضا اون روایتی که ارتدن ناس بعد قتل حسین اللاد اون رو بعد خیلی بهش توجه کرد و درست تحلیلش کرد که بعد از قتل عبابدل علیه السلام مردم مرتد شدن مگر سه نفر که یهی ابن امه طویل و ابو خالد کابلی و این نفر دیگه این سه نفر که در روایت ازشون نام برده شده است مطعم ابن جبایب ظاهرن خب نشون میده که شیعه با معرفت بسیر نسبت به امام اصرش و بزایفی که در قبال امام داره کم بود بله شیعانی که محب اهل بیت بودن و یه از تشعیم می زیاد بودن بله. اما امام چنین کسایی رو میخواد که اینها چشم بدوزند به دهان امام که امام چه میگوید مطابق فرمایش امام حرکت بکنند امام رو معصوم بدانند مفترض و تاعه بدانند شیعه بسیر به این معنا کم بود لذا ارتداد از ایمان و عمل به لوازم ایمان و لوازم تشیع که خب متاسفانه در اون زمان کم بود. و حالا ببینید امام سجاد علیه السلام اون چنان عمل کرد که بعد از شهادت امام سجاد علیه السلام امام باقر علیه السلام با یک سیر اشتدادی تشیع مواجهه. تشیعه اونچنان روش کرده که مناطق شیعه اینشین حیده رو گسترش پیدا میکند. امام صادق به همین ترتیب مانه. عدد اصحاب امام باغیر رو با امام سجاد علیه السلام بسنجیم نسبت سنجی بکنیم و همطور امام صادق علیه السلام رو که گفتن بیش از چهار هزار نفر استقصار شده استخراج شده از متون که اینها تحت تربیات امام صادق بودن. چطور شد که بعد از امام سجاد چند دو سه دهه بعد از شهادت مصطفی جل السلام تشیع اون چنان گسترش پیدا میکنه که امام صادق علیه السلام پایه یک تشکیلات بسیار مهم که تشکیلات بکانا باشه اینها رو پایلیزی میکنه نشون میده که در اقصان نقاط تشیع حضور داره در خراسان و مناطق مختلف ایران و عراق و شمال افریقا و جزیره العرب و اینها که امام ناچار میشه که نمانده های رو در اونجاها نصب بکند که و کانال ارتباطی باشم بین اندره. شیعیان و امام امام. با این نیست مگر به خاطر این حرکت مدبرانه ای که امام سجاد علیه السلام انجام داد که طبیعتا با شهادت اون حضرت پایان نپذیره بلکه منتقل به امام بعدی شد. الحمدلله رب العالمین. خب خدمت شما کنم که بریم وارد بقای امروز بشیم. 12 محرم سال که هجری چه گذشت. بنده کنم که خیلی جانسوزه واقعا انسان وقتی که تاریخ رو مطالعه می‌کنه و مقتل رو مطالعه می‌کنه رفتاری که با اسرای اهل بیت علیهم کردن اون ددمنشان یعنی حادثه کربلا رو شما بگزار با اوج مصیبتی که حادثه کربلا داره بگذره یک طرف و در کنارش گویا از هر روز و از دیروز مجدد مصیبت دیگری هم عرض اون مصیبت گویا در آغاز میشه بحث اسارت اهل بیت با اون رفتاره عجیب و غریبی که اینها با اهل بیت علیهم السلام کردن خب تاریخ میتونه از دیگه برای ما گزارش بشه تاریخ میتونه اینطور برای ما گزارش بکنات که بعد از شهادت عبی عبدالله علیه السلام و اصحاب یارانش این سپاهیان کوفه و این دشمنان ره کوفه رو در پیش گرفتن دو رفتن خبر پیروزی رو به ابن زیاد دادن، خب این زن و بچه و این به صلاح تعداد قلیل از بازباندگان عباب الله در هاون بیابان راها میکردن که اینها خب مقدار ازاداری میکردن و برمیگشن حالا به مدینه اینکه خب اینها که دیگه سر جنگ نداشتن، اینها که خب یه زن و بچه بودن و یه موسجاد علیه سلام و چند نفر به صلاح جوان یا طفل کم سن و سال مرد که بیا دو سه غلام هستند و چند تا بچه هستند به مصطجا علیه السلام اینها و تعدادیم 7 ده نفر مثلا زن و بچه و امثال اینها اینها رو اسیر بگیرن و خودشون ببرن کوفه با اون وضعیت که الان دو سه تا روایت عرض می‌کنم بله. و در کوفه اون رفتاره داشته شدن مجلس ابن زیاد و سر بریده رو سرهای بریده رو و سر بریده ابو عبدالله رو مقابل اینها قرار بدم من بعض وقتها به خودم نهیب میزنم که ما هنوز به عمق فاجعه پی نبردیم حالا باید بشینیم ساعاتی تصور بکنیم فکر بکنیم این صحنه ها رو برای خودمون ترسیم بکنیم که اگر واقعا این صحنه ها برای خود ما پیش بیاد چاله بهمون دست میده که اون ظلمو نسبت به فرض کنید که پدر ما بکنن نسبت به برادر ما بکنن و بعد سر بریده رو مقابل ما حمل بکنن و بعد توی این مجلسی سر رو قرار بدن سربوریده عزیزترین عزیزانمون رو قرار بدن و بهش جسارت بکنن در مجلس ابن زیاد بگونه جسارت بشه در مجلس یزید بگونه جسارت بشه بساط شترنج روی این سر پهن بشه و شترنج بازی کنند یا مثلا شرب خمر بکند یزید و بقایای اون ظرفش رو مقایای اون شرابش رو بریزه در همون تشتی که سر اون برکه ابوالدلال علیه السلام قرار داره این جسارت ها و این مسیر مسیر طولانی تا کوفه مسیر طولانی کوفه تا شام اونا با این وضعیت ای بشه و این صحنه ها بحث اسارت بحث به اصلاق قرار دادن بر روی سکوی بردگان در شام مقابل مسجد و روی سکوی قرار بدن این زینب سلام الله علیه ها رو این دختران رو فاطمه بنت الحسین رو سکینه رو روی یک سکوی قرار بدن که بردگان رو در اونجا قرار می دادن برای فروش این ها فکر می ما هنوز حضر نکردیم ما از دور دستی بر این آتش داریم از دور داریم نقل میکنیم کنیم حادثه رو و هنوز وارد متن حادثه نشدیم و اوج مصیبت از دیروز شروع میشه. یعنی روز آشورا بعد از اون قارتگری ها و وحشیگریهای که انجام دادن شب رو در کربلا ماندن هم سپاه عمر ماند و هم احلویت علیه السلام و خب اون شب رو نمیدونم اینا هم از همون جاهاییست که واقعا باید فکر کرد خب چجور مثلا زینب سلام الله ها و این زنان این بچه ها در کجا ماندن چگونه ماندن در حالی که اجساد کشتگان کنارشون هست بدن متحر عبا عبدالله علیه السلام در محل قتلگاه افتاده بر روی زمان مانوز فجی اسب تاختن بر بدن عبا عبدالله علیه السلام بعد سر رو جدا کردن سر رو شبانه فرستادن توسط خونی و حمید ابن مسلم به کوفه و خب اون قصه حال دیگ و اینها که در خانه خونی پیش آمد و خب اینها شب رو به سر کردن روز یازدهم هم عصر در کربلا ماندن چه بسا صبح ماندن برای اینکه اجساد کسیف خودشون رو سفاه و دفن بکنن برای اونها نماز بخوانن مثلا و دفنشون بکنن اما اجساد متهر عبا سلام و شهدای در رکاب اون حضرت بر روی زمین ماند و اینها دفن نکردن ایم... که چنانکه از کلمات بعضی از اهل میتاره این مسلمان باستفاده میشه به با همین گفتن گوه اینها ما رو مسلمان دانن بدن کشتوان خودشون رو دفن کردند و اتصاد متحر اینها روی زمین بدن مسلمان باید دفن بشه بله. اگر کسی خروج بر یزید کرد از اسلام خارج میشه و خب این بدنهای متحر روی زمین ماند تا عصر روز یازدهم هم مثل دیروزی باشه بعد از زهر روز یازدهم حرکت کردن به سمت کوفه و خب عرض میکنم اون صحنه‌ای ای که حضرت زینب سلاماللالی ها و اهل بید رسیدن به بی کنار اجساد کشتگان و به ویژه عبا عبدالله علیه السلام که در روایات بعضا توصیف شده مثل قررت ابن قیس تمیمی قررت ابن قیس همون دوست هر ابن یزید است که هر جریان توبه حور رو نقل میکنه و اینکه که هر چگونه یه خودش رو جدا کرد از سپاهو و این قرره میگه که اگر میدانستم حور نیتش رو به من گفته بود که چه نیتی داره چه بسه من هم همراه او میرفتم و این داره گزارش میکنه درست. و این میگه که من وقتی که آوردن عبور بدن احل بیت علیه السلام رو از کنار بدن متحر امام و دیگر شهدا به زنان اهل بیت علیهم السلام نگاه کردم که از کنار بدن حسین و اهل و فرزندش میگذاشتند در آن حال آنان ناله کرده و بر صورتهایشان میزدند هرچرا فراموش کنم این گفته زینب سلام الله دختر فاطمه سلام الله را فراموش نمیکنم که وقتی از کنار بدن برخاک افتاده برادرش حسین میگذشت میگفت یا محمدا یا محمدا صلی علیک ملائکوت السما هذا حسین بالعراء مرمل ما مقطع الاعضاء یا محمدا و بناتو که سبایا و ذريتك که مقتله تسفی علیه السبا آه ای محمد وای ای محمد درود فرشتگان آسمان بر تو این حسین است که در صحرا افتاده و به خون آغشته شده و اعضایش قطعه قطعه شده است دخترانت به اسیری می و فرزندانت کشته شده اند و باد سبا بر بدن‌های آنان خاک می پراکند بعد این میگه که به خدا سوگند زینب با این سخنان هر دوست و دشمنی را گریاند این با این صحن اهل بیت السلام از کنار کشتگان عبور داده شدند. با چه وضعیتی اینها رو به سمت و کوفه بردن در گزارش دیگری که در بسیاری از منابع آمده و نمیتوان جزو نقلیات ضعیف تاریخ دانشتر. بسیاری از منابع نحوه معامله با اهل در بردنشون به سمت کوفه معامله اسیر آمده که چگونه دارد که مثلا ابن عفان در فتوح فتوحش نقل میکنه خوارزمی در مختلش نقل میکنه که میگه که این زنان رو بر شتران بیجهاز سوار کردن همانند اسیران تا کوفه بردن بعد از کنم که امام سجاد علیه السلام رو بر غل و زنجیر جامعه این از دیگری استفاده میشه حضرت لب ابن ستیر میگه که من سال 61 هجری اجری قمری در کوفه بودم دیدم اسرای اهل بیت و سوار بر شتران بیجهاز وارد شهر کردن در حال که سربازان ابن زیاد گرد آنان حرکت میکردن مردم برای دیدن آنها خارج شده بودن و زنان کوفی بر آنها میگریستن در میان علی ابن حسین را دیدم که برگردنش غول جامعه بود و دستانش را به گردنش بسته بودند. اینو مرحوم شیخ مفید در امالی خودش نقل میکنه و غول جامعه میدونیم. یک است که گردن و دست و دو پا رو با هم برحال میبندن به هم متصله. و با این وضعیت امام سجال علیه السلام رو وارد کوفه کردند در ارز کنم که مثل دیروزی حرکت کردن از نقل ها برمیاد و از تحلیل برمیاد که اینها دیشب رو در مسیر خوابیدن قبل از رسیدن به کوفه و قصدم داشتن که روز وارد داشتن که مردم ارائه کنن اصلا رو مثل امروزی وارد کوفه شدن و در مرآ و منظر مردم اهل بیت رو عرضه کردن و زبان لال باد بشه از بیان این که حریم عبا عبدالله علیه السلام با چه وضعیتی به هر حال اینکه چهره خاندان عبا عبدالله علیه السلام رو در معرض دیده هر نامحرمی قرار داده این از اون بحث های زجراور حوادثه بعد از حادثه آشور خیلی ممنونم باید جبالی حالا سوال هایم توی پیمرک های ارسال می شود برامون که ازتون خواهم پرسید انشاءالله فاصله رو دوستان به اون بگم بخش رو بشتنی و بازگید یکی دیگر از درس‌های عاشورا را از زبان حجت و والمسلمین دهشری بشنویم و بازگردیم بسم الله الرحمن الرحیم صلی الله علیک یا ابا عبدالله در عصر روز دوازدهم قرار داریم و بنا نقلی شهادت حضرت امام سجاد علیه السلام و بازگو میکنیم ما درس دوازدهم پاسداری از عرضش ها دوستان توجه دارید انقلاب کردن به انقلابی عمل کردن یک مسئله است. حفاظت از دستاوردهای انقلاب یه مسئله دیگر. امام حسین به گونه کرده که انقلابش حفظ بشه. ارزشهایی که آفریده در کربلا نمانه تحریف نشه. جوری نباشه که دیگران بیخبر از اون باشند یکی از کارهای بسیار خوبی که امام علیه سلام انجام داد همراه بردن امام سجاد علیه السلام بود. که البته به مسلحت خداوند مریض میشه چند روزی، جهاد از او برداشته میشه و اما رسالت بزرگ پیامرسانی و پاسداری از ها رو بر عهده داره. در بوریه از زمان این پاستاری رو حضرت زینب سلامالله علیه ها انجام میده. اما در ادامه مسیر شما امام سجاد رو میبینید به عنوان قافل سالا و اسیران در کوفه سخنرانی میکنه، در شام سخنرانی میکنه و اوج سخندانیشون رو در شام میبینید. که آنچنان تحولی به وجود میاره که گفتن که انقلاب دومی شکل میده و گفته شده در اون فاصله که در شام حضور داره با فرزند یزید به نام معاوی صحبت میکنه و اونقدر معثر واقع میشه که اون حکومت رو بعد از پدرش رها میکنه و بدانید اگر پاسداری امام سجاد علیه از انقلاب آشورا نبود ما امروز چیزی از آشورا نمیدانستیم یکی آمد خدمت اون سجاد گفت بل آخر کی پیروز میدان شد امام فرما سفر کن تا اذان ظهر بشه زن و اقیم اذان بگو و اقامه بگو اون موقع میفهمی کی پیروز میدانه در اونجا خواهی و شاد نه محمد رسول الله صلی الله علیه و ال بدهن که هنوز آهنگ زیبای اذان به گوش میخوره پس ما پیروزیم اما این پیروزی با پاسداری از ارزش ها که توسط این بزرگ مرد گرفت در واقع برای ما وندگار شد امیدوارم ان شاء لازم رو از آشورا بگیریم و ما هم پاسدار ارزش آشورا باشیم ان شاء الله و علیکم و رحمت الله و برکاته توفیق هست کتاب در دو بخش دیگه در حقیقت خدمت و الاسلام و مستمی نصر جباری باشیم و در بروری امروز صحبت کنیم و فعالیت های امام سجاد در سال 61 هجری به دو بخش تقسیم کنیم بخش بخشی که امام سجاد در کوفه سخنانی رو داشتن، خطبه رو داشتن و بخش رو هم به شام اختصاص بدیم اما قبلش من سوالی رو که دوستان رو بازوا شاید چندی نفر پرسیدن، پیامو ارسال کردن مطرح کنم اینکه بعد از واقعه عاشورا شاید اصلا طرح سوال یه سخت باشه و پاسخ دادنش که مسلماً سخت‌تره اینکه سر از توابل علی که به بدن رسید و دف شد بعد ارز در ارتباط با سر مخدس عبدالله علیه السلام و تاریخ ملحق شدن سر به بدن اولا اینکه آیا سر به بدن ملحق شد یا نه برمیگرد به همون بحث معروف محل دفن سر متحر که در این ارتباط شاید بوده ده قول وجود داره بله مشهورترین قول همین کربلاست که بسیاری از علماء ما بشپایی پایبند بودن ملتزم بودن از مرحوم شیخ صدوق و سید مرتضا و بزرگان شیعه و شاخص های شیعه در آثارشون مطرح کردن که سر توسط امام سجاد علیه السلام بازگردنده شد به صلاح کربلا هنگام بازگشت و سرا به مثلا ابو ریحان بیرونی در الاثار الباقی تصریح میکنه حتی به روزش میگه در فل اشرین من سفر در بیستون سفریان یعنی همون اربعین بله. و اربعین سر ملحق شد و یکی از ادله یا یکی مهمتنه عدله ی کسانی که عربعین رو ازش دفاع میکنن که بیت علیه السلام در عربعین اول رسیدن به کربلا همین سخن ابو ریحان هست که خب معمولا دقیق نقل میکرده که او چون میگه که در عربعین سر عبدالله علیه السلام ملحق شد به بدنش به کربلا آورده شد از اون استفاده میکنه پس بیت هم در همون روز رسیدن به به کربلا بله و خب این مشهورترین نقل هست و بعد از اینکه سر رو بردن اونجا یزید به درخواست امام سجاد و اهل بیت علیهم سر رو و سرها رو چون سر دیگر شهدار رو هم بله. بریدن و بردن به شام و سرها بازگردانده شد به راست کنم که کربلا و دفن شد در کربلا این مشهورترین قول هست بله. قول دیگری هست باز در میان شی مطرح بوده و اون دفن در نجف هست در بعضی از متون زیارتی به اصلاح درباره نجف قول وجود داره که اگر بخویم جمع بکنم بین اون قول و قول کربلا بعد اینطور گفت که به صناح اونجا شد محل قرار دادن رسول حسین بوده به اون اعتبار در روایات عیم علیه السلام یا امان صدق علیه السلام بخصوص برای اون محل از کنم که اعتباری قائل شدن یا آدابی زیارتی امثال اینها بخوام جمع بین این دو قول بکنیم و الله خب عرض قول اول مشهور ترین هست طبعا. غیر از این دو قول حدود هشت قول هست که اینها اقبال علمای شیعه نیست در متون تاریخ و روائی غیر شیعه. مطرحه مثل مدینه، مدینه نقل شده، دمشق نقل شده، رد نقل شده که همین محل زیارتگاه قبر امار و عرض کنم که قرنی هست، کوفه آمده، اسقلان آمده، قاهره. منه. در مصر آمده مر و آمده و حران اقوال حران در, در سوریه دلست. این ضعیفی است که قابل نیست است بنابراین اونچه که مشهور بوده همین کربل هست و در عربین و نجف هم بنابرای بعضی داروند و حالا سوال دیگه ای که خیلی کوتاه اگر بهش بپردازیم درباره این که پیکرهای متعبش فردای که ایدفشون هم و, و ترسلتی چه کسیم بله. من اینجا خوب نقد بکنم این که مشهور هست در زبانها به طبع برخی از منابع متأخر که سه روز بدن ملغن خلافن بلا قصد کفنی که در سخنان مادهان بزرگوار هست و اینها این جز در متون کوهن ما در روایات به صلاح اولیه و در منابع اولیه این نیست اونچه که از متون برمیاد این که خب بعد از این که سپاه و امرسد در اصر دیروز از کربلا خارج شدن دیگه مانعی وجود نداشت برای دفن اجساد متحر قبیله بنی اسد که در همون نزدیکی ها بودن و ارز کردم در روز که حبیب نملاهر رفت در از قبیله بنی اسد 67 یار آماده کرد بیار ملحق کنه به امام حسین علیه اون تا دیگه سپاه و امرسد مانعی شدن و حبیب خودش رو رسون قبیله شیعی بودن و قبیله بودن به هر حال محب اهل بیت بودن اینها متلاصد به محض خروج سپاه عمر سعد اینها آمدند بنابر این ها آمدن یا در روز یازدهم یا در شب دوازدهم در یا مثل دیشب اینها آمدن و اجساد مطهره شهدا رو دفن کردن و خب بدن مطهره ابدلاله سلام رو آوردن کنار چون فاصله داشت از قتلگاه تا محل آه. اجساد شهده که منتقل می‌شدن کنار هم در به اصلاح کنار خیام قرار داده می شدن بدن طهراب عبدالله به اونجا منتقل شد حالا با اون وضعیتی که واقعا حزن که بدن قطع قطعه شده که زیر سم اسبان مانده این رو چگونه بر بوریایی و حسیر هم کردن آوردن در اونجا دفن کردن و همطور بدن علی اکبر رو پایین پای عبدالله علیه السلام و همه شهدا رو در یک گودال کنار هم دفن که الان در به صلاح پایین پای عبا علیه السلام محل قبور شهدا مشخصه مشخص. که فقط حبیب جدا دفن شده به اعتبار چه بسا همین که از بنی اسد بود و بنی اسد متولدی این کار بودن بدن حبیب رو جدا دفن کردن هور. و هور هم بلشون چون اون رو به اصلا بردند در جای دیگر دفن کردن فاصله داره با کربلا و بدن حضرت الله سلام الله علیه هم در همه قسمت در همون شبه دوازده هم برمید نهایتاً نه اینکه سه روز از نقلای متقدم استفاده نمیشه و سرها هم که در عربین همه سرها بازگشت بله بر بل اساس اینکه این اهلویت علیه همه سلام بازگردانده باشن طبیعتاً عربین خب خیلی ممنونم حالا وارد خطبه کوفی حضرت سجاد علیه سلام میشه بله بعد از ورود اهل بیت علیهم سلام به کوفه در مثل از کنم که چنین روزی خب عبیدالله خاصی نمایی بکنه و لذا اهل بیت علیهم رو وارد دارالاماره کردن مجلس ترتیب داد با احساس غرور و پیروزی و این عسرا رو وارد از کنم که اون مجلس کردن و خب سخنان رد و بدل شده بین امام سجاد و بین عبیدالله البته قبل از از کنم که اینکه مجلس ابن زیاد وارد بشه در ورودی کوفه هم زینب کبرا سلام الله علیه های خطبه غرایی ای ایراد کرده و هم امام سجاد علیه السلام خطبه ایراد کرده به گونه ای این خطبه غرا بود و تأثیرگذار بود و موجب منقلب شدن شرمندگان شد اون اهل کوفه شروع کردن به گریه کردن اظهار پشیمانی کردن فریشانی کردن و اظهار کردن به امام سجاد که ما در تو هستیم بفرما در جنگ با تا هستیم در صلح با تا هستیم حضرت از کنم که نحیب زدن بهشون فرمودن که اگر شما اینچه نسید چه کسی پدر من رو کش چه کسی در کربلا این فجایی رو وجود آورد اگر شما این چه هستید بعد جمعی حضرت داره بهشون فرمود که اون چه که من از شما می‌خوام که نباشید نه با ما نه بر ما شما کوفیان بر ما نباشید با ما بودن پیشکش پیش به تعبیر ما و لزوم ندارت که با ما باشید همه شما بودید که اومد از شام که سپاهان آمد شما ها آمد این سپاهی 3000 نفر رو ترتیب دادید بعد از این صحنه وارد شدم بر مجلس عرض کنم که ابن زیاد و اونجا گفتگویی رد و بدل شده بین امام سجاد علیه السلام و ابن زیاد که هیچ پیامی اگر نباشد من فقط اشاره کنم به یک پیام بسیار مهم و در این حال کوتاه که هیچ پیامی اگر در این گفتگوها در این ها نباشد مگر پیام عزت و شجاعت به تعبیر دیگر انسان میتونی طور تعبیر بکند که اینها به ظاهر اسیر بودن اما در واقع سرور اینها بودن و اسیر ابن زیاد بود. اسیر یزید بود چون در بند شجاعت اینها اسیر بودن در بند منطق اینها اسیر بودن که وقتی ابن زیاد سوال می نگاه می به امام سجاد و وقار ایستاده در عین اینکه در قول جامعه است و وقار ایستاده سآل کرد اسمت چیز حضرت تمود علی بن الحسین گفت که مگر خدا علی بن الحسین رو نکشت که این برمیگرده به همون تفکر جبرگرایانه اوموی که در ابن زیاد بروز میکنه اینطور طور حضرت سکوت کرد بعد ابن زیاد گفت که چی شده چرا سخنی نمیگه حضرت فرمون من برادری بزرگتر از خود داشتم به نام علی که مردم او رو کشتند و او روز قیامت از شما دادخواهی خواهد کرد ابن زیاد نرز کنم که گفت خدا او رو کشت باز بر اساس همون تفکر چابر که امام ساکت شد ابن زیاد باز گفت چرا سخن نمیگی چون سکوت امام رو تحقیر خودش می دید بله. گفت چرا سخن نمیگی امام فرمود که الله یتوفى الانفس حين موتها بله به اصل خدا میکشد اما زمانی که مرگ قرار برسد بر اساس اون تدبیر کلی و بعد آیه و ما کان لنفس ان تموت به ابن الله با این جمله حضرت ابن زیاد به خشم شد و دستور داد گردن حضرت رو بزنه که از زینب سلام الله علیها خود رو و روی علی بن حسین موسجد علیه السلام انداخت و فرمود که ابن زیاد از ما دست برداشت مگر از خونهای ما سیر نشودی مگر کسی از ما رو دیگه باقی گذاشتی و وقتی که از ازش که این چه نکرد و خطاب به ابن زیاد این رو گفت امام سجاد علیه السلام هم جمله‌ای داره که فرمود که اگر ایمان به ابن زیاد هم اگر ایمان به خداداری از کنم که یک فرد پرهیزکار رو پس با اینها بفهمه که من میخواهم بکشی فرد پرهیزکار با اینها بپرس که تا شام برن و بر حال امین باشند نسبت به اینها که زیاد دید که فضا فضایی نیست که بخواد در مقابل این منطق امام من سجاد کاری کنه زیبا بهانا بو گفت از خیشاوندی بحث قرابت و خیشاوندی مطرح کرد و گفت که من میدونم که این زن یعنی زینب رازی که اگر برادر زاداشو او هم با او کشته بشه، این نوجوان رو وا با زنان خیلی خیلی ممنونم آقای ما یه بخش دیگه کوتاه هم باشیم در باشیم درباره خطبه شام حضرت ان شاءالله بازگردیم حبیبی حسین حبیبی حسین حبیبی حسین بسم الله الرحمن الرحیم سلام عرض میکنم خدمت شنوه نگاهن عزیز و سال روز شهادت جانسوز حضرت سید و ساجدین امام زین العابدین علیه السلام رو به همه شما عزیزان تسلیحت عرض میکنم است با عنوان سیمای حماسی امام سجاد علیه السلام که اجازه میخوام این کتاب رو حضورتون معرفی کنم این کتاب نوشته جناب استاد سید احمد خاتمیست و به دو شکل منتشر شده، یکی به صورت کتاب که نشر متحر اون رو منتشر کرده و یکی هم به صورت فایل الکترونیکی که مرکز تحقیقات قائمیه اصفهان اون رو تهیه کرده و شما میتونید با مراجعه به سایت این مرکز این کتاب مختصر رو دریافت بفرمایید. در این کتاب ابتدا اوضاع سیاسی دوران امام سجاد علیه السلام بررسی شده و سیاست بنی اومیه در باره اعمه علیه السلام و شیعیان اونها بعضن ذکر شده مثل ترور شخصیت اعمه و فشارهای مختلف بر شیعیان. احیاء نهضت آشورا یکی از اناوین کتاب هست که به روشهای مختلف احیاء نهضت محمسی السلام توسط مام سجاد علیه السلام اشاره شده از این روشها میشه روشهای عاطفی رو نام برد مثل گریه حضرت بر پدر مظلومشون حضرت سید و شهده و یادآوری مکرر واقعی جانگداز کربلا توصیه به زیارت حضرت سید و و توصیه به سجده بر تربت حضرت سید الشهدا به عنوان مهر از جمله این روش ها هست برای احیاء خاطره جانسوز آشورا از جمله روش های دیگر احیاء خاطره آشورا توسط امام سجاد علیه السلام روش های سیاسی بوده که شکستن ابهت و غرور دشمن و افشاگری های عمومی و ارشاد و هدایت مردم رو میشه در این زمینه ازش یاد کرد موزه امام سجاد در برابر قیام هایی که در دوره حضرت اتفاق افتاده از جمله مطالب این کتاب هست موزه امام سجاد علیه السلام نسبت به قیام توابین و همچنین قیام مختار سقفی از جمله اناوین بعدی کتاب هست و مقداری راجع به شخصیت مختار هم در همین زمینه صحبت شده و اما سیره امام در عرصه فرهنگ مبارزه حضرت سجاد علیه السلام در پوشش دعا از اناوین کتاب سیمای حماسی امام سجاد علیه السلام هست. و اما یادگار جاویدان امام سجاد علیه السلام یعنی صحیفه سجادیه که در بخشی از این کتاب به صحیفه سجادیه و اسناد اون و ذکر بعضی شعرها و ترجمه این صحیفه مبارکه پرداخته شده. همچنین یادگار دیگر امام سجاد علیه السلام یعنی مناجات خمس عشر مناجات های 15 کانه ازش ذکر به میون اومده. طبیعین مسائل اخلاقی و حقوقی در رساله حقوق امام سجاد علیه السلام و همچنین تفسیر آیات قرآن توسط حضرت زین العابدین علیه السلام از جمله مطالب بعدی کتاب هست. همونطور که از کردم کتاب سیمای هماسی امام سجاد علیه السلام کتاب مختصری است. حدود سی صفحه است. هست. که هم می توانید از دانش متحر کتابش رو تهیه کنید و هم با مراجعه به سایت مرکز تحقیقات قائمی اصفهان فایل پیدی ایف اون رو دریافت بفرمایید خدا نگرد با دوستان گرامی این بخش هم بخش معرفی کتاب بود با اجرای روی همکارم جناب غزنفری که زحمت این بخش رو کشیدن. با آیه جبائی صحبت می‌کردیم درباره خطبه کوفه حضرت امام سجاد علیه السلام و خیلی مختصر و جامع اشاره کردن به این بخش آیه جبائی درباره حرکت این کاروان از دقیقاً زمان حرکت از کوفه به سمت شام و ورودشون به شام و خطبه شام هم رفت. بله اگر کنم هر فرصت کوتاه و حوادث هم خوادث. خیلی مفصل با در حد بیان به تاریخ رخ دادن حوادث را کنم که خب از شو در مثل چنین روزی اسرای اهل بیت علیهم السلام به کوفه رسیدن و ابن زیاد به این مقدار بسنده نکرد که اهل بیت رو وارد مجلسش بکنه و بر هر حال گفتگویی که در اونجا با امام سجاد علیه السلام داشت با زینب سلام الله ها داشت و حالت تهدیدآمیز تخییرآمیز تلاش کرد که بر حال غلبهی خودش را اظهار بکند به این بسنده نکرد و دستور داد سرهای شهدار از جمله امام حسین علیه السلام رو در کوچه های کوفه بگردانند امروز یا فردا این کار رو انجام بدن سرهای ادمی که در همونجا از زید بن عرقم نقل شده که من نشسته بودم در اتاق خانم دیدم که از کوچه سر مقدس عبدالله سلام رو رد می بر روی نیزه ای و این آیه شریفه رو شنیدم از اون سر مبتحر که امحسدت ان اصحاب الکهف ورلقیم کانومن آیاتنا عجبا و این اوج رزالت این فرد ابن زیاد میرسونه که تلاش داره به هر نحنی که شد و بغض خودش نسبت به این خاندان رو عملی بکند و از طرف زه، زهره چش بگیرد از اهل کوفه که هر کس بخواد با این دستگاه و اموی در بیفتد سرنوه شش این چیزیست خب این رو انجام داد نسبت به اهلوید علیه چه کرد؟ از نقل برخی از متون تاریخی هرچند ارز میکنم برخی از متون تاریخی داره گرایش به خاندان بن اموید نقل کردن که ابن زیاد محترمانه با اهلوید در کوفه رفتار کرد در جای خوبی منزل خلبتی داد اما این با ابن زیاد سازگار نیست ابن زیادی که این رفتار رو در اون مجلس و اهل بیت دارد با سرها داره. بعد از اون نقل های دارد که من الان زبانم آجز از بیانش که با سر متحر عبدالله سلام چه کرد شنوندگان عزیز اهل فضل اگر اهل مراجعه باشن به کتاب تفکرات الخواست سبت ابن جوزی مراجعه کنم و بحث تقویری که او مطرح میکنه خیلی آزاردهنده است برای ما که با سر تحراب عبدالله علیه السلام ابن زیاد چه کرد و بعد فرستاد به شام بنابراین در مقابل این گونه نقلیات نقل امثال ابن فتال نیشابوری در روزت الواعزین در غلم ششم پذیرفتنی تر است که میگه احلویت علیه السلام رو محبوس کرد در حبس قرار داد در کوفه اینکه چه مدت در کوفه بودن باز درباره اختلاف هست بعضی گفتن دو سه روز بیشتر نبودن اما برخی از محققان با توجه به اینکه ابن زیاد از یزید درباره اینکه با اسرا چگونه رفتار بکند استفصار کرد و کسی رو فرستاد زجر ابن قیس و فرستاد به شام که جواب بیاره گفتن که پس بعد مدت بیشتر اهل بیت در کوفه مانده باشن تا تکلیف روشن بشه ده ده ده. و بعد یزید گفت که اینها رو بفرست به شام همراه با سرها سرها رو جلوتر حرکت دادند و بعد اهل بیت علیه السلام رو همراه با شمر و یک نفر دیگه حرکت دادند و گفته شده در مسیر به هم رسیدند یعنی در مسیر اهل بیت و سرها متاسفانه به هم رسیدند و سرها و اهل بیت با هم وارد شام شدند و اون قصه معروف سهل ساعدی که از کنم که فاطمه بنتالحسین پولی برش میده از خودم که ولی این درخواست میکنند که از اون فرد حامل رأس بخواد که این سرها رو جلوتر حمل بکند که به زنان نگاه نکنند مردم اینها در هنگام ورود به دمشق هست و با این وضعیت وارد بر از خودم که شام کردند، فقط برای اینکه بدونیم چگونه رفتار شد با امام سجاد علیه السلام روایتی از خود اون حضرت هست که فرمود من بر شطوری لاغر که جهاز آن چوبین و بدون زیرانداز لنگ بود خب شطور لنگ آزاردهنده است این مسیر طولان رو طول سوار کردند که ناهموار راه میرفت در حالی که سر حسین بر نیزه و زنان خاندان من پشت سر من سوار بر شوتران لاغر و استخانی می آمدند. و بچه های کوچک و بزرگ پشت سرمان و نیزه ها گردا گرد بودند. اگر اشک از چشم یکی از ما جاری می شد با نیزه به سرش می تا آنکه وارد شام شدیم وارد شام بشن با سرور اهل شام مواجه بشن و با جشنی که اونها ترتیب دادند. و از دروازه ساعات وارده از که مجلس یزید بکنند و خب گفتگویی که بین امام سجاد و بین یزید رد و بدر شده سخنی که بین حضر زینه سلام علیه ها و یزید در و بدر شده که الان مجال بیانش نیست و فقط من درس میگرم این رو تا اون بحث خطبه امام سجاد رو اشاره بکنم که بعد از اون مقدمات ارز کنم که یزید دید که حال حریف منطق این اسران نمیشه و همونطور که از کنم خود گویا اسیر در دست منطق این نداداد به, به صلاح خطیبش که بعد منبر بره و شروع به فحاشی بکنه و سب و لعن امیر المؤمنین و امام حسین و یاران امام حسین علیه السلام وقتی که او شروع کرد خب رسمی بود در شام یزید در حدت رسم پدر حسین پدرش معاویه رو داشت استمرار میبخشید در اینجا. امام سجاد علیه السلام اون خطبه غرار و ایراد فرمود. به یزید در یک جمله بسیار معنادار فرمود که آیا اجازه میدی من برم بر روی این اعواد و روی این چوب‌ها و به صلاح سخنانی بگم که درش خوشنودی خدا و رضایت حاضران و عجر و ثباب باشد. بله. بر روی این چوب‌ها یعنی این منبر نیست منبر منبری است که پیامبر برش برین و یه الهی بره مشت چوبه و یزید امتناع کرد عرض کنم که بعد مردم اصرار کردند و امام سجاد علیه السلام بر منبر رفت و خطبه اون حضرت مشتمل بر دو سه بخشه که در بخشش خود رو معرفی می‌کنهت که به اصطلاح این مردم من عرفنی فقط عرفنی و من لم من خودم رو معرفی میکنم. که به صلاح ایوه ناس اقطیناستن و فضلنا به سبعن خودشو فرزند پیانبر معرفی میکند عرب نومن عرب نومن فران تا بعد میاد اوصاف امیر المؤمنین رو من فرزند فلان هستم کسی که بای البیعتن هاجر الهجرتن و بعد خودشو با امان فرزند حضرت زهرا صلی اللہ علیه ها معرفی میکند و در نهایت میاد خودش رو فرزند امام حسین علیه السلام این شجره توبار از پیان برکتم شروع میکنه تا به امام حسین و توصیف میکنه من فرزند اون کسی هستم که او رو تشنه شهیدش کردید مظلوم شهیدش کردید او رو مصلوبش کردید او رو اولیانش کردید و همطور که میگفت یزید ناشا شد گفت که ما از ذن ازان بگو و که ازان که اذان گفت که امام سجاد علیه السلام بعد از شهادت به وحدانیت خدا تجلیل الهی کرد و بعد از شهادت به رسالت پیامبر اکرم به یزید گفت که او جد به یا سیو جد من و ارز کنم که و بعد یزید بی اعتماد به سخن حضرت ناچار شد اقامه نماز بکند به ظاهر و مشغول نماز آیه جوابی بسیار ممنون و متشکرم ازتون فرصت اون واقعا ماشون. کم بود برای اینکه همه بقایای و باقیین از زبان شما بپشتویم خیلی متشکرم ممنون لطف داری دایره خدمت خداوند گردانش خدا ازتون نوشش لطف کردید بار شب شد و محتاب خجلتر از شبهای قبل دلسوختگان کربلا را نظاره می کند. خدایا امشب میخواهم با تو از زبان مردی ارز نیاز کنم زینت آبدان بود و امام عارفان خدایا بر محمد و آل محمد درود فرست و زندگیم را با بخشایش خود پایان بخش و آرزوگم را با امید به حرمتت برپادار و راههای رسیدن به خوشنودیت را برایم هموار کن و کارهایم را نیکو گرد محمد و آل محمد درود فرست و اجابت کننده دعایم باش فریادم را از نزدیک بشنو و زاری و نالم رک کن صدایم را بشنو و رشته امیدواریم را از خود مبر و پیونده و خواهی, خواهی را مکسل و مرا در آنچه از تو خواستم و نیز در های دیگرم به غیر خود با مکزار قبول باشه ان شاء الله و راز و شما شنوندگان عزیز و ارجمند به درگاه ایزده متاول و امروز 12 محرم روز شهادت توست ای زینت آبدان و به یاد می آورم حضور پاک تو را در مجلس یزید آنگاه که به تو گفت ای فرزند حسین پدرت درباره سلطنت با من ستیز کرد و دیدی که خدا چه بر سر او آورد و تو این آیات را برای او خواندی تا پرده از جهالتش برداری هیچ مصیبتی ناخواسته در زمین و نه در وجود شما روی نمیدهد مگر اینکه همه آنها قبل از که زمین را بیافرینیم در لوح محفوظ ثبت است این امر برای خدا آسان است، این به سبب آن است که برای آنچه از دست دادید، تأصف نخورید و به آنچه به شما داده شده است، دل و شادمان نباشید. و خداوند هیچ متکبر فخر فروشی را دوست ندارد. یزید آیه دیگری را جاهلانه می خاند که هر مصیبتی به شما میرسد. دست خودتان است باست و ای امام حق با صلوات میگویی ای پسر معاویه و ای زادگه هند قبل از آنکه تو به دنیا بیایی نبوت و فرمانروایی هماره در اختیار پدران و اجداد من بوده است در جنگ های بدر و اهد و احزاب جدم امیر مؤمنان دوای پیام بر خدا را در دست داشت و پدر تو پرچم کف را. وای بر تو یزید اگر می دانستی که چه کار کرده ای و درباره پدر برادر اموها و خاندانم مرتکب چه گناهی شده ای به کوهی می گریختی و شنهای بیابان را بسترخیش می ساختی. و فریاد و شیونت را به آسمان میسندید پس منتظر باش خاری و ندامت روز قیامت را که بعدگاه خلایق است من چیستم سلطان عشق و آه و ناله اصحاب من از امتا دخت تصاله شمشیر من آهی که از ده رسیده برده سلاهم تا دل دشمن دریده از قطرهای عشق من دریا خروشد و از نالهای داغ من خونها به من با دعا و جریه روز دادم بر شیعان خیر رو زخمم شاهد انبوه روز است <تصفيق> چشمان زخمم شاهد انبوه روز است این سینه مجروح خسته کوه روز است من تا قیامت روزه احساس خانم من روزه نعش امو عباس خانم. من آه قربت از دل محضون کشیدم شمشیرها را همه شمشیر از خودشون میچشن میجنگرد من آه قربت از دل محضون کشیدم شمشیرها را از بدن دیرون من چ بر سات را تن را داف کردم من نشایمی که بن را داف کردم در آوتش کم کریم چون چم کردم آن نشوری را به ذهنت هرچه تون باقی با عبدالرزاق نریه سلام باشه و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 یعنی مجالس ضد ظلم، مجالس ضد سلطه، مجالس ضد شمره ها و یزید ها و ابن زیادهای های زمان موجود، زمان حاضر معناش اینه، این استمرار ماجرای امام حسین این است امروز دنیا پر از ظلم و جور است شما ببینید چه میکنن در فلسطین چه می کنند، در عراق چه می کنن. در کشورهای گوناگون چه میکنند با ملت دنیا چه میکنند با فقرا چه میکنند با ثروتهای ملی کشورها چه میکنند ابعاد عظیم حرکت حسین بن علی علیه السلام شامل همه این میدان وسیع شود